بسم الله الرحمن الرحیم بیت هشتاد و که شروع میکنه بحث حجب رو بحث محجوب کردن یا محجوب شدن از میراث رو میبینی که باوجود شخص دیگر شخصی شکل کلی از میراس محروم میشه یعنی گیرش نمیاد که بهش میگن حجب حیرمان ببینید این محجوب شدن بر دو نوعه. یکیش حجب نقصانه یعنی شخص با وجود شخص دیگر کمتر گیرش میاد بش میگن حجب حیرمان کلن محروم میشه در نقصان مثلا اگر میت پسر یا دختر داشته باشه سهمی مادر میشه یک شیشو در حالی که اگر نداشته باشه سهمیش میشه یک سپا اینجا سهم مادر نقص شد کامل شد ولی در حجب هیرمان به شکل کلی از ارث محروم میشه مثلا شخصی یک برادر داره با یه پسر اینجا دیگه چون پسر وجود داره برادر امیت محجوب میشه از نیراز و حجم حیرمان هم میشه یعنی کلن محروم میشه سهمش کم نمیشه بلکه ارث عرص نمیبره در این درس یعنی از بیت 84 تا 96 همین بحث حجب هست و منظور از حجب هم حجب حرمان هست در این درس والجد محجوب و محجوبون ان فی احواله هی ای فرماید پدر بزرگ محجوب هست از میراث. ارس نمیبرد برد به وسیله چه کسی محجوب هست؟ به حسیل پدر فی احواله ثلاثی در حالتهای سگانه پدر بزرگ جای پدر است پدر و پدر بزرگ سه حالت داشتند. یک زمانی که فقط از راه فرض و سهمی ارث می بردند این زمانی بود که میت پسر داشت دو زمانی که از راه اصابگی ارث می بردند زمانی که میت پسر نداشت فرزند نداشت سه زمانی که هم راه فرض سهم می بردن یعنی یک شیشم و هم راه عصبگی باقی رو هم می بردن زمانی بود که میت دختر داشته بیفرماد پدر بزرگ محجوم میشه از میراست به وسیله پدر در حالتهای سگانش سه حالتهای سگانه رو هم قبلا توضیح الان خب شخصی فوت کرده پدر داره و پدر بزرگ هم داره اینجا دیگه دا پدر بزرگ عرص نمیگاره چون پدر نزدیکتره پدر اون پدر بزرگو محجوب میکنه به پدر میگه حاجب به پدر بزرگ میگه تو این مثال محجوب. و تس قط تو من كل جهه بالامی ففهمه و قسمه اشبه که و ساقط می شوند ساقط می شوند جده ها از هر جهت یعنی چه از طرف پدر چی از طرف مادر بالعوم به وسیله مادر شخصی فوت کرده یه مادر داره و یک مادر بزرگ پدری داره یه مادر بزرگ مادری داره اینجا دیگه مادر بزرگ ارث نمی چون مادر وجود داره پس و از قتل جده تو کل جهه بالعومی ففهم و قسمه اش به و ساقط می جدها ها از هر جهت که باشند به وسیله مادر این مسئله رو بفهم و قسمه اشبهه و قیاس بگیر آن چرا که شبیهش هست. یعنی چی؟ یعنی اونایی رو که دورتر هستند با اونایی که نزدیکتر هستند محجوب میشوند. یعنی پدر بزرگ دورتر مانند پدر پدر پدر با پدر پدر ساقت میشه. و همچنین مادر بزرگ دورتر با مادر بزرگ نزدیکتر قسمه اشبهه اینه دیگه خب بیت هشتا چیشم میگه و حاکم ابن الابنی بالابنی فلا تبغی ان الحکم صحیح معدله و همچنین ساقط میشوند ابن ابر با ابن پسر پسر با پسر ساقط میشون فلا تبغی ان الحکم صحیح معدله پس ما طلب از حکم صحیح میل ای باره سمت دیگه یعنی اون چی که حکم صحیحه قبولش کن خب حالا میگه که پسر پسر پسر رو محجوب میکنه شخصی فوت کرده یک پسر داره و یک پسر پسر داره حالا اون پسر پسر چه از این پسر باشه چه پسر پسر ای؟ این پسر ساقتش میکنه دیگه پسر پسر با وجود پسر ارث نمیبره پس <تصفح> میگه و حاکد ابن الابنی و تسقطو بیت هشتاد و هفتم و تسقطو الاخوتو بالبنینا و بالابل ادنا کما روینا بیت هشتاد میگه و ساقت میشود برادران و ساقت میشود برادران با پسران با پسران منیت من شخصی مرده برادر داره یعنی یکی چی بیشتر فرقی نمی کنه پسر هم داره چی یکی چی بیشتر فرقی نمی کنه یه دیگه برادران ارث نمیبرند پس برادران ساقط می با با پسران بلبدینا و بلعب ادنا کما روینا و با پدر نزدیک آنطور که روینا برای ما روایت شده است این نائب فایل است. همونطور که برای ما روایت شده است یعنی از میراسی ها از غلما برزور از اب ادنا یعنی پدر پدر میت چون برادران با پدر میت ساقت میشوند در مذهب امام شافعیه یک این کتاب طبق مذهبیشون نگاشته شده است. اما با اب دور با با اب اعلا ساقت نمیشون یعنی با پدر بزرگ که بحثش در درس بعدی میاد اونجا بحث مسئله برادران همراه با پدر بزرگ ساقت میشون با برادران با پسران مهید و همچنین با پدر ميت. زمانی که یک پسر داشته باشه یا پدر دیگه برادری هیچ برادری ارث ننیبره و همچنین و به بن البنین و با پسران پسر هر طور که باشند. سیانی سیادی فی الجم و الوحدارو. جمع تکی هم درش مساویه، فرقی نمیکنه پس برادران با به پسران پسر هم ساقط می‌شن. این ساقط کننده ها چه یک نفر باشد چه جمع باشد فرقی نداره دیگه. برادران میت ساقط می برادران و خواهران دیگه فرقی نداره خوب. تا اینجا ای کار گفت بیت 89 میگه ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه فافهمه الاحتیاطی اضافه بر اینها ابن ام یعنی برادر مادری اضافه بر اینها با پدر بزرگ هم ساقت میشه محجوب میشه این برادر حقیقی و پدری با پدر بزرگ ساقت نمیشدن ولی برادر مادری، فرزند مادری، پسر مادری، برادر مادری اضافه بر اینها با پدر بزرگ هم ساقط میشه ففهموه الاحتياتی این مساله رو میگه خوبی بفهم و بالبناتی و بناتی لابن جمعا و وحدانا فکل زدنی و فرزندان مادر ابن اوم برادر مادری میت همچنین بغیر از با پدر بزرگ ساقط میشه با دختران میت و با دختران پسر میت میت اگه دختر هم داشته باشه برادر مادری میت ارس نمیبره جمعن و وحدان فقل زدنی چی این دختر میت یک نفر باشه چی بیشتر باشه چی این دختران پسر میت یک نفر باشند چی بیشتر باشند فرقی نمیکنه کنه فقل زدنی به من بگو که اضافه هم بده یعنی علم اضافه هم بده به من نویسنده بگو با حاله ثم بنات الابنی از قطن متحاز البنات الثلثینی فتا آیه بیت نوادوی میگه که سپس دختران پسر ساقط میشوند؟ زمانی که دختران خود میت دو سوم مال رو ببرند ایفتا به شما جوانی که به شمایی که در این کتاب میخونیم میگه که اینو هم بدون دختران پسر ساقط میشوند با دختران میت زمانی که دو سوم مال رو ببرند دختران میت چه زمان سهمیشون دو سوم بود؟ زمانی که دو به بالا بودند اگر خدای مه دو دختر سه دختر بالاتر داشت در این حالت دختران پسر ارث نمیبرند ساقط میشوند محجوب میشوند مگر در یک حالت الا اذا اصبهن الذکر من ولد ابری، الا ما ذکروا مگر زمان که اسبه کند دختران پسر را مذکری که ولد امر باشد طبق آن میرازی ها ذکر کردن با. شخصی فوت کرده دو تا دختر داره یک دختر پسر داره و یک پسر پسر داره در این حالت دختر پسر از ارس محجوم نمیشه چرا؟ چون پسر پسر عصبش میکنه اگر این پسر اینجا وجود نداشته بود میت که دو تا دختر داشت وياك دختره بسار إن جدك دختره بسار أيرس ومثل هن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فرضه النوافيا أسقطنا أولاد الأم المواقية. ومثل مسألة قبلست يعني ما نترك دختران مهيت دمًا كدتها ببالابودن. دختران پسر مساقت میکردن و مثل آنهاست خواهرانی که از هر دو جهت خواهره میت هستند منظور هم از طرف پدر هم از طرف مادر و مثل همون مسئله قبلی است خواهران شقیقه خواهران شقیقه اخ اخذ فرض به و زمانی که فرض خود رو کامل ببرند خواهر دو سهمدار یک دوم و دو سیف یعنی زمانی که تعداد به بالای دو بود دو می میبردن سهمشون دیگه بیشترین سهم خواهر دو سومه زمانی که خواهران شقیقه دو سوم ببرند اسقطنا اولاد الابی البواکیا ساقط میکنند دختران خواهران پدری منیت رو ردیکنند یعنی شخصی فوت کرده دو تا خواهر شقیقه داره یک خواهر پدری داره دو خواهر شقیقه دو سوم میبرند و یک ابو هم مثلا داره دو خواهر شقیقه دو سوم ما رو میبرن خواهران پدری چیزی غیرشون نبیاد باقی مانده رو عمو میبره بله این مسئله تکمیل التثلیث هست اگر خواهر یک خواهر شقیقه یک نفر باشه یک دوم میبره خب یک شیشوم دیگه برای اینکه دو سوم تکمیل بشه باقی میمونه که به خواهر پدری میدن ولی اینجا ندگه اینجا دو 3 و خواهران شقیقه بردند و خواهر سهمی بالاتر از این در شریعت ندارند لذا چیزی گیره خواهر پدری نمیاد و ایکن اخن لهن حاضرا اگر برادری مال لخاهران پدری حاضر بود اصبهن باطنن و ظاهرا اونا رو باطنن و ظاهرا عصبه میکنه بله یعنی باطن منظور دیانتن بین بنده و بین پروردگارش ظاهرا هم ظاهرا هم اصابش میکنه به همگام رفتن در نزد قاضی حکم ظاهری مسئله همه همین هست که نو داریم حکم باطنی همون دیانتن بین بنده و پروردگر یکی ظاهری که همین فتوه داده بشه باید و ابن الاخی بالمعصیبی من مثله فوق فر نسبی میگه که ابن اخ پسر برادر فرقی نمیکنه چه شقیقی باشه برادر چه پدری عصب کننده نیست کسی را که در درجه خودش هست یعنی برادران، دختران برادر رو عصبه نمی کنه. پس پسر برادر دختر برادر رو عصبه نمی کند افقهو یا بالاتر از خودش رو هم عصبه نمی کند یعنی خواهر برادرش رو که امهش باشه پس نه دختر برادر رو عصبه میکنه و نه خواهر برادر رو که امه باشه عصبش نمیکنه زیرا اونا جزب الارهان هستن باره. پس بحث حجب تا اینجا کار توضیح داد و تمام اونایی رو که داریم چند بیت اومده بودند و محجوب میشن جد بود بعصیل پدر جده بود جده مادری جده پدری ابن ابر بود برادر شقیق بود خواهر شقیقه بود برادر پدری بود پدری بود برادر مادری بود خواهر مادری بود امر بود دختر پسر اینا تو این چند بیت نام برد که محجوب میشن از عرض ساقت میشند و خیلی ها رو نام نبرد جزب عصبه ها هستند خیلی از اونایی رو که جزب عصبه ها هستند نام نبرد مانند مثلا پسر برادر شقیق پسر برادر پدری امو شقیق امو پدری پسر اموی شقیق، پسر اموی پدری مرد و آزاد کننده چرا؟ چون اینا رو در بحث عصبه اگر یادتون باشد ذکر کرد اونجایی که ابتدا گفت جهت مهم است مثلا بنووت که پسر باشه او خووت رو محجوم میکنه شخصی فوت کرده بود پسر داشت و برادر اینا هر دو تا عصبه اند ولی پسر برادر چیکار میکنه؟ ساقط میکنه. پسر ابوت هم ساقط میکنه. ابوت اخوت و ساقط میکنه. اخوت عمومتو به این شکل ترتیبی که در بحث ها اونجا ذکر شد 4 بیت دیگه مونده تا به بیت صدام برسیم در این چار بیت یعنی 97, 98, 99 و قصد یک ای رو استثنائی رو بیان میکنه و این مسئله مثل اکدریه و مثل امریتن روز مسائل خاص هست خب این رو میخونیم که در درس بعدی بحث جد اخوه شروع میشه این چار بیتو ای خاص هست مثل اکدریه، مثل امریتن درنا واضحف تصدمك وإن تجد زوجا وأم ورثا وإخوة لأم حاز الصلوثاء وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرز النصب فجعلهم كلهم لأم وجعل آباهم حجرا في اليمن وقسم على الإخوة ثلث ترك فهذه المسألة المشركة. بلى مسألة مشركة هست يا إن مسألة مشركة به چه شکل است میگه و انتاج زوجا و امرا وریفه و اخوه لام ام حاز الثلثا اگر در یک مسئله زوج بود مادر بود که ارث می بردن و اولاد ام بودند چه زمان زمانی که حاز الثلثا ثلثا زمانی که دو 3 می بردن. یعنی بیش از زمانی که یک 3 می از ثلث پس اگر در مسئله شوهر بود مادر بود و فرزندان مادر به شرطی که یک سوم ثوم سهمشون باشد یعنی زمانی که بیش از یک نفر باشه چون ما قبلا خوندیم اگر فرزند مادر یک نفر باشه یک... یک شیشون سهمش هست ولی بیش از یک نفر باشه سهمش میشه یک سوم. چون یک نفر یک شیشون براش خوبه دیگه ولی از یک که بالاتر شد دیگه میبره می یک سوم رو چون یک سوم بیشتر از ا خب حالا میگه اگر در یک مسئله زوج بود یعنی شوهر میت فوت کرده بود شوهر داشت و امن ام و مادر داشت و فرزندان مادر داشت که حاضر سلوثه که صحبیشون یک سفون بود یعنی بیش از دوتا بودند دوتا و بالاتر بودند و اخوتن ایزن لی و امه و همچنین در, در این مسئله برادر و خواهر شقیقه وجود داشت واستغرق را ق ماله به مثلا زوج داریم عم داریم دو ولد عم داریم یک اخه شقیق در این مسله در زوج مسئله زوجو یک دوم دو اومو یک شیشو دو تا ولد اومو میدیم یک سیوم چون دو تا حسن مسئله گرفته میشه اصل مسئله از یک شیشو از ششتا یک دوم دو س... میشه سه شوهرونو میبره یک ششمش میشه یک مادر میبره یک سومش میشه دو که اولاد اوم میبرند سه و یک و دو با هم میشن ششتا خلاص مال تمام شد اون شقیق چه چی میشه؟ چیزی گیرش نیومد. همین مسئله در زمان فاروق عمر رضی الله عنه پیش اومد در سال اول اومد برادر شقیقو محروم کرد از ارث. سال بعدی که مسئله دفعه بعدی که مسئله پیش اومد گفتم با اینی که اون برادرهای میت یا خوهرهای میت که مادری هستن سهم میبرن این هم مادرش با مادر یکیست با مادر میت یکیست هم پدرش اونا فقط مادرشون با مادر میت یکیست فرض کنید که اصلا اینا پدر نداشتند پدرشون سنگ بوده ولی مادرشون که یکی هست عمر فاروق رضی الله عنه اومد و چه کرد این شقیقه رو از محرومیت در آورد اینو چیکار کرد اینو فرزند مادر حساب کرد و در صحبی که فرزندان مادر می بردن یک صفب اینو هم چکار کرد شریک کرد به خاطر همین شراکت بیش میگوند مشارکه حالا دقت کنید میگه اگر در مسئله زوج بود مادر بود و, براد، و فرزندان مادر که یک سوم سهمشون بود و همچنین اخوایی که شقیقه بودند و اونها یعنی زوج و ام و فرزندان مادر با سهمیهی که براشون تعیین شده کل مال رو بردند میگه اینجا برادر و برادر شقیقه رو چیکار بکن وجعلهم كلهم لامه انارهم برادر مادری قرار بده وجعل أباهم حجرا في اليم و قل شقيقهارو پدرشون رو سنگی فرض کن که در دریاست و قرار بده پدرشون رو سنگی است که در دریاست واقسم على الاخوه ثلث التركه و بر تمام این برادران یعنی چه اونایی که پدریان چه شرقیلیان چه اونایی که مادریان یک سوم ترکه رو بین اینام شکل مساوی تقسیم کن فه هایه المسئله این مسئله مسئله مشرکه هست بله این بود مختصری از چند بیشی که تا اینجای کار خدارا شکر توضیح اشراک